درست اینکه نماز به آدم ادب بده اینه که آدم بپذیردش. حال نداشتی بلند شوایستا محکم نماز تو بخون. دیدی وضو رو داری تون میگیری بگو سب کن. آرام وضو تو بگیر. از اول با خودت لچ کن. اینو بهش میگم جهاد با نفس. جهاد با نفس برا عبادت مثل نماز چقدر شیرین خواهد بود. جهاد با بانفس نمیکنه برا نماز با خودش در نمییفته کلنجار نمیده اووخت میگه خدا امام زمان ما رو به ما برگردون خوب آقا که بیاد که تو باید بری جهاد تو دو دقیقه وقت برا خدا برا نماز نمیدی میخوای بری پا به حضرت جون بدی برا خدا البته آدم آقا رو ببینه انقدر آدم میشه که هم جون میده هم وقت میده برای نماز ولی تا من و تو وقت ندیم برای نماز وقت دادن برای نماز عین جون دادنه تا من و تو وقت ندیم برای نماز معلوم نیست آقامون بیاد آقامون منتظر نیست همه اهل عالم آلم خوب شن فرمود شیعیان من گناه نکنن من زودتر میام شما خوب بشید اونایی که منتظر نیستن اهل عالم خوب بشن نماز معدبانه تو رو تکبرت رو مقابل خدا خرد میکنه و کبریایی خدا رو به تو تلقین میکنه و کبریایی خدا رو به تو تحمیل میکنه و سایه زیبا و پرنور عظمت الهی رو بر قلب شما مسلط خواهد کرد عظمت خدا که آمد پاکی و تهارت درون می آید عشق خدا می آید معرفت به خدا می آید و دنیا همه چیش برای آدم عوض میشه. اگه دیدی هزار تا دیوار جلو چشم دست اون وره همه دیواران رو دیدی تعجب نکن کسی که به بصیرت رسید دنیا براش هجاب نخواهد بود